اید میکند به این معنای که مراقب باشید، زرر لطمه به خودتون نزنید خدا کنده حرفش اینه بنده های من من اگر به شما دستوری دادم، هر حرفی زدم هیچی تو جیب من خدا نمیره چیزی بنا نیست گیر من بیاد یه چیزی رو باور بکنیم خودم این هست که ما برای خدا و اهل بید هیچ فایده ای نداریم جملاتی که خدا تو قرآن گفته دستوراتی که خدا تو قرآن بیان کرده عمل بهش دوزار به خدا اضافه نمیکنه. که فکر بکنم که اگر خدا گفته که مثلا اقیم سلات آت زکات نماز بخونید روزه بگیرید حرف من را گوش بدید خب برای خدا نفعی داره حتما دیگه استفاده ای میکنه نه این رو باورمون بشه خدا نسبت به هر کس و هر آنچه که ما مهربان فرض میکنیم برای ما و نسبت به ما مهربون تره خیلی به ما علاقمنده لذا یه جایی تهدیدمون کرده نه اینکه بترسوند نه اینکه بخواد عرض به حضورتون که تو رو در وحشت بیاندازه نه خیر خدا میگه مراقب خودت باش. یا ای لزین آمنو، علیکم انفسکم کسایی که میگید ما مسلمونیم مؤمنیم، دین داریم ایمان داریم اولین نکته و شاید لب تمام قرآن این هست. همه حرفایی که من دارم میزنم علیکم انفسکم فایدهش برا خودتونه. اگر یه جایی میگم آقا فلان کارو نکنید اثر خوبش برای خودتون اگر انجام ندید. یکی از اون مواردی که عزیزان خدا نسبت بهش تاکید داره و باز در قالب همین تهدید الهی که رحمت خداست بیان میکنه این مسئله است که خدا میفرماد ولا تکونوا کلذین کل نسوا الله فانساهم انفسهم که کسایی نباشید که من خدا رو یادشون میره و این فراموشی من نتیجهش این هستش که خودشون رو فراموش کردند. ضربه اول برا خودشون. و لا تکنو کل نسل الله و انصاح و منفزم. رضا و مسئله ذکر خدا یاد خدا خیلی اهمیت داره. معلم علامه طباطبایی که خیلیاتون می‌شناسید دیگه حالا کوچیک و بزرگ همه می‌شناسن علامه طباطبایی رو که خیلی بزرگوار عالمی بود که به مقاماتی رسیده بود که گای گفتن بعضی از اون مقامات شاید برای ها فهمش شنیدنش براتون دردسر ایجاد بکنه. اون آخر عمرش ایشون یه فراموشی گرفته بود. که میگه یکی از شاعرانش میگه ام آقای میگفت تیشنامه ما آب میدادیم دست علامه توا تبایی اتشش رو یادش میرفت آبو میزش رو زمین و نمیخورد یعنی یه حالت فراموشی خیلی زیادها تشنگی از اون مواردی که آدم به این راحت یادش نمیرود ولی میگوه علامه توا یادش میرفت مریض شده بود گفت تو اون احوالات رفتم بشه علامه توا طبع گفتم آقای علامه توا طبع استاد من چکیده ی عمرت رو به من قالب یه جمله بگو درسی که انلام سید محمد حسین تبا طبع میخواد امروز به من و شما بدهد چکیده ی عمرت رو به ما بگو ایشون فرموده بودن یه آیه از آیات قرآن رو هیچ وقت فراموش نکنید فقط تو خونه هاتون بعضی از آیات قرآنی که میدونید براتون اثرگذار نگاه بهش داشته باشید بدیدید آدمی که خط خوشی داره براتون بنویسه قابش بکنید تو منزل بشه. خانم مصطفی من میشناvem؟ خانم میشناvem مصطفی. حالا باز این مادرا میگن این مسجده. حالا عرضم به حضرت شما اون تابلو رو میزنید تو میشه گلستان. مثلا دو تا گل این میذارید سه تا گل میذارید اونجا. اون یکی مگه خب یه آیه باشه آیه که یاد خدا منو بندازه. اثر در نفس من داشته باشه. بعضی از آیات تو خونه باشه فقط و این یکات نباشه ما ایرانی ها خیلی خودمون خوشمون میاد و فکر میکنیم که دائم ملت در حال چش زدن ما واقعا فکر میکنیم یه بیکار تو عالم استخدام شدن دیروی جوان امده هم بگوه اجا میخوام ازدواج بکنم فکر کنم منو جادوم همین امروز جادوم کردن سهرم کردن گفتم چطور؟ گفت سه سال چهار سال خاصگاری میرم نمیشه. تا به جادو ربطی نداره اولا ببین اولا کلا اینکه عقلت کمه برای اینکه میری خواستگاری و اینا اینکه خب یه بحثه جدا چون آیت الله امجد میفرمود فرمود ازدواج کردن تو این دور زمونه یکی ای این دو تا حالته یا دل شیر می‌خواد یا مغز خر می‌خواد عرضم حضورتون که یه موقع آیت الله قدیما که حالا قبل از اون اتفاقاتی که بیفته ما خدمت شما رسیدیم مشودیش که به این واسه این میگوتش که آقا من مشکل دارم جادوم کردن گفتم نه چیز من بیکار نیستش که کسی بلند شه یه جادوگر پیدا کنه مثلا تو داتای عربستان چون بیشتر اونجا هست بعد بخواد ب... نه ببین اراده کار چیه گفتم کار داری گفت نه گفتم خب دیوانه است من کسی بسنم بگی بگو دخترم من ازدواج کن یه کاری پیدا بکن بگم مثلا من توی پیک موتوری کار می‌کنم و خیلی نفر پیدا بشه ازدواج فراهم بشه ما خیلی مراقب خودمون است برای همه خونه ایرانی ببینی دهتا تا با این یک یه یعنی تو زده قضا شش نخوره یه یعنی تو وسط پذیرایی زده یه یعنی تو اتاق خواب زده وقتی میخوابه چش نخوره هر همه جا هست در حالی که قرآن آیاتی داره رفقا که میتونه تو وجود من اثر گذار باشه من یه قاب پروشی است تو این پاساش مهستان کفه پاساش مهستان یه موقع رفتم پیشش گفتم دوش من این آیه رو میخوام این ذکر رو میخوام چرا این رو نداری؟ گواج آنها نگاه بکن ولایت علی ابن عبی حسنی صد تا قاب چقدر زیبا گفت دو سال مونده اینجا گفتم چرا گواج اونی که مثل باقلوا میبرن و این یکاده گو من دو هزار تا این یکاد بفروشم بذارم اینجا یه هفتهی فروختمش در حالی که قرآن نیمه اینکه من رو مثلا محافظ من باشه یه وقتی میمیرم سر قبرم بخونن برام فایده داشته باشه دم ازدواج دختر خانوان مثلا نور رو بگیرن دستشون که خوشبخت بشن بازی داریم میکنیم با کلام خدا یکی از اون آیه هایی که رفقا خیلی اثر گذاره اینه فزکرونی از کرکم بنده های من یاد من باشید من یادتون باشم ذکر الله یه رفاقت دو طرفه با خدا یه دوستی دو طرفه با خدا اونی که تو زندگی های ما متاسفانه رنگی نداره اگه خدا توقع داریم میگیم خدای چرا نگاهم نمیکنی من به شما میگم خدا همون موقع بهت نگاه میکنه میگه بنده ای من آخه تو حرف منو گوش کردی تو یاد من بودی تو حواست به من بود که حالا میگه خدای چرا نگاهم نمیکنی نوجا اونایی که تو جلسه هستید دقت بکنید یاد خدا اگر تو زندگیامون رنگ به وازه میلیاردها تومن ثروتم داشته باشی من مینویسم امضا میکنم اگه میلیاردر شدی چهل سالت شد پنجاه سالت شد پولم داری یا بیا بگو آقا یه به من بگو که آهای من دروغ گفتم آقا اصلا تو این جلسه داد بزن بگو آهای سیدیان دروغ می‌گفت نمیگم پول تو خوشبختی اثر نداره مون همه خوشبختی اینا نیست پولی که درش خدا نباشد آرامش درش نیست. زندگی های اون کسانی که پول دارن اما خدا ندارن برید نگاه بکنید. زنه به مرده اعتماد نداره. مرده به زنه اعتماد نداره. بچه‌ها ننه بابا رو قبول ندارن. ننه بابا ها رو قبول ندارن. ازدواج میکنن مشکلات متعدد دیگری دارن. ماشین سی میلیونی سوار میشه بهش نمیچسبه میگه باید 300 میلیونی باشه. این ذهن همش درگیره. خدا نداره یه کسی هم میونه آیه پراید قدیمی داره خیلی راحت زندگی میکنه فز کرونی از خدا میگه من آرامش رو تو یاد خودم قرار دادم لذا امام باست احمد آقا میفرما احمد همه دینی یه جنایی قرآن مراقب باش اینو فراموشش نکنی ولا تکون زینه نسل الله فانساهم انفسهم مثل کسایی نباش که هر حالا خواهم گفت چه... چه کار بکنیم که ذکر الله تو زندگیمون کمرنگ نشه یعنی یاد خدا رو خواهم گفت بارتون. که هر چیزی تو ذهنشون هست برای هر چیزی برنامه دارن وقت دارن اما برای یاد خدا وقتی نداره پس مسئله ذکر فقا از مهمترین مسائل زندگی است یاد خدا باشی حالا خب که میگه آقا چیکار کنیم یاد خدا باشی چه چیزهایی کمک میکنه من یاد خدا از زندگیم نره چون ببینید شیطان و دوروبریای شیطان و آدمای شیطون شیطان صفت تمام این بناها و این تجملات دنیا رو بنا نهادند برای اینکه ما رو از خدا دورمون بکنن اصلا کار شیطان اینه لاغویان نهم اجمعین یعنی خدایا انقدر به خودشون مشغولشون میکنم که تو رو یادشون بره وقتی تو یادشون رفت اولین ضربه به تعبیر قرآن به خودشون هست بیچاره میشن شیتون دشمن خونی من شماست قسم خورده بیچاره همون بکنه به قول اون عالم میگفتش که برای بابامون حضرت آدم وقتی که خدا گفت آدم از این میوای این درخت نخور. هر چی میخوای تو این بهشت هست بخور برای هست آدم قسم خورد گو برات خیره از این میوهها بخور خورد و از بهشت رانده شد برا او قسم خورد برات خیر میخوام از بهشت بیرونش کرد. برا ما قسم خورده تون میکنم. ف به کل ااقوی نه هم عجمعهین. تمام وقتم رو میذارم. کی این آدم حواسش از تو غافل بشه؟ حالا من با مراقب باشم شیتون تو این هدفش پیروز نشود. گام اول چیه؟ بزرگان اهل معرفت میفرماند مدیریت نسبت به فکرتون داشته باشید خوب گوش بدید رفقا شاید مسئله ساده جلوه بکنه ولی باور بکنید همه چیز همینه هر آن چیزی که و هر کلام هر نگاه هر چیزی که فکر من رو از خدا دور میکنی کنارش بذارم از الانم بذارمش کنار فردا نمیشه پس فردا ممکنه وقت نشه هر چیزی که فکر من رو به امام صادق باق یه دستور قشنگ به ما بده امام صادق فرمود در مواجهه با هران چیزی که حس میکنی تو رو ممکنه فکر تو رو نسبت به خدا دور بکنه سری تهول رو برگردون برای هر کسی هم متفاوته برای من طلبه یه چیزایی ممکنه من از خدا دور بکنه برای شما هم همینطور گای نگاه کردن هاست گایی آجابا میگه من با یه دارم وقتی باشون میشینم نمان از خدا دور میکنن کنارش بذار من تو منزلمون ما هست گای نگاه میکنم بعضی از این برنامه های رو اینا ذهن من رو درگیر میکنه تا یه هفته نمیتونم به خدا فکر بکنم درسته نگاه نکن حسر داره دیگه ما فکرمون مدیریت نمی کنیمیم بعد هفهه چشم به هم میزنه مییم سال شده اینقدر این ذهن درگیره هر کاریش میکنیم بیاد در خونه خدا نمیشه. یا جا و مناجات لذت نمیبرم از نماز لذت نمی میدونی چرا؟ چون تو اون نماز منقدر فکرید و درگیری که حواست کمتر به خدا هست هر چیزی میخواد فکر من رو متحول بکنه. لذا زهرا دعا میکرد از زهرا سال الله علیه. میگم خدایا ازت یه خواسته دارم هر چیزی که اشتغال من رو از تو یعنی فکر من رو نسبت به تو ممکنه دور بکنه خدا اینو از زندگی من ببارش رفقا نشینیم با رفیقی که منو از خدا دور میکنه و بعد با بعضی حرفها روم نشد و آقان نمیشه و بل خرید چیکار بکنیم و اینا رو به خود خدا قسم این رفقاتو و دم قبرمون به زور میانه علیکم السلام بیزرام اگه بیاد میگه زودتر چالش بکنید بریم چله رو بخوریم چله کباب بعد از میچسبه میچس به آدم چون خستگی هم داره بیزرام باور کن میاد آقا چقدر لفتش میدن تموش کنید بره دیگه ای بابا این رفیقت بود حاج من به خاطر حرف دیگران نشستم با یه عده ای که حرف غیر خدا میزدند یه حرفایی میزدن ذهن منو از خدا دور میکرد فکر منو از خدا دور میکرد با خودم فکر میکردم میگفتم که اگر پیش اینا بلندشم ممکن هزار جور پشتر من حرف بزنند بذار بگن آقا کلا خودمونو بشه علیکم و یعنی این یعنی مراقب باش براحتی بذارش کنار وقتی که از اینا دور بشی خود به خود ذهن سمت خدا میره آرامش پیدا میکنی دنیا هم بهت میده خدا همه چی بهت میده خدا رحمت کنه شهید عباس بابایی <تصفح> رحمت الله علیه ایشون امریکا درس بخوند خیلی همون دست داریم امریکا درس بخونیم دیگه قبی هم نداره منطقه خیلی ایرانیا وقتی میرن اونجا ارزش های خوشون از دست میدن خدایاشون میره امام حسین میره نماز یادشون میره روز یادشون میره من دیدم از فامیل خود من رفت برگشت بعدی اومد یه دفع مثلا محرمم برگشت یه این سیایی رو دید که آدم هر کسی کدور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش شروع کرد مثل کرد کو 20 سال خبر نداریم محرم امام حسین کی اینقف اونجا مشغول شهید بابایی امریکا درس میخوند حالا نمی‌دونم رشته تخصصی که می‌خوند همین خلبانی بود یا چیز دیگری اونجا و همین یکی از رفقای شهید بابایی میگه میگه من میدیدم عباس یه کار عجیبی میکنه بعد از اینکه کلاس تموم میشه عصر میاد و ورزش میکنه مثل یه ورزشکار حرفی اینقدری ورزش میکنه که میاد تو خوابگاه سرش میذاره رو بالش خوابش میبره تعجب کردم یه روزی صداش کردم گفتم عباس بابایی یه سوالیه چند وقت ذهن من رو درگیر کرده ساعت اینجا نیست من تو چه ساعتی وقت دارم آقا وقت هست نونیمه چند وقت ذهن من رو درگیر کرد و خم ازت بپرسم بیشایید بابایی گفت بپرس گفتم چرا انقلی ورزش میکنی؟ که ورزش کار حرفه این نیستی که بعدی کلاس ببینم ببینید این آدم موفق حتی از بود علم دنیا موفق میشه شما یه دونه دانشمند تو دنیا پیدا نمیکنید هرزه بوده باشد یه تا دانشمند پیدا نمیکنید که وقتش برای خیلی گناهایی که امروز جوانای ما میذارن مستمش. میگیم میخوایم غربی بشیم ولی تو چی میخوایم قربی بشیم؟ سگ گرفتن دستم. نگاه بکنید، آقا نگاه میکنید. خیلی به ندرت ممکنه مثلا استثنایی سری هم پیدا بشه ولی غالب اینه. اخلاقش، رفتارش، موش، لباسش، شکلش که فرهنگ متمدن غرب میگیم بابا تو این فرهنگ متمدن غرب ها بودن تو این فرهنگ عالم ها و دانشمندها بودن تمام اونا رو ول کردی سگشو گرفتی آرا خوردنش یاد گرفتی چرا خوباش یاد نمیگیریم می گفتم آقای شهید بابا حالا موقع شهید نشده بود آقای عباس بابا این چرا اینقدر ورزش میکنی؟ ایشون گفته ببین جای امریکاست عرق و ورق و همه چی آزاده گناه هم نداره هر کاری بکنیم نمیگن گناه کرده و من میدونم که اگر پیش شما بشینم جمعی که بعد از کلاس تشکیل میدید دو رو هم میشینید حرف میزنید بلاخره بازی میکنید هر کاری میکن. ممکنه فکرم به سمت گناه مشغول بشه منم جوونم مشروبه میخورید میگید کیف داره میخورید یه بار هموست میکنم چیکار میکنم میام بعد کلاس ها اینقدر ورزش میکنم خسته بشم اینقدری خسته بشم که میرم تو خوابگاه سرامو رو روبالش خوابم ببره فقط صبح برای کلاس بلنشم دیگه وقت برای فکر کردن این خوضه اولات نداشته باشم این میشه عباسه بار من چی؟ دانشگاه, دانشگاه ما رو نگاه بکنید هرمسر ها شوا ها همه دنبال اینه که با دادوز قابل شن درس خوندن نیست کسی که ولی این آقا مرده رفته امریکا برای اینکه از عمرش استفاده بکنه نه خدا دستش ناراحت بشه نه خدا رو از دست بده و نه علمیت خوب رو از دست بده یه دانشجوی خوب بشه یه دانشمند خوب بشه یه انسان مفید برای جامعش بشه در زم از همه اینا مهمتر خدا هم یادش نره ذهنش به غیر خدا مشغول نشه اولین راه این رفقا رو مدیریت کنید به هر چیزی نه آقا یه جا نشستی داری فکر بکنیم این فکر گناه هست سری اصلا حالتت رو عوض بکن برو بیرون از خونه قدم بزن فکری که ملکه بشه یه موقع میگه چیکار آقا کنم به نامحرم نگاه نکنم چیکار کنم بعضی از گناه ها نباشه ببینید رفقا اخلاق ذره ذره برا ما ملکه میشود یه روز یه ماه یه سال دو سال یه معاملی ده سال طول کشته میگه آجاها نمیخوام به نام نامعرم نگاه کنم اما هم که تو خوابور را میرم سرم میگرده برنامه‌ای براش ندارم واقعا نمیجوری هم خیلی ها که مثلا فلانی مثلا الان خونه میرم بیرون تا دم کار محل کار مثلا چشه میکنم؟ خیلی برنامه ندارم اما سرشون میگرده یا چرای که اتفاقی افتاده به خاطر که عزیز من ده سال تو این روحت رو عادت و این فکرت رو به با گناه زیستن دادی حالا اینو این درد و درمانش خیلی سخته مثل سرطان بدخیم داره و خوشخیم اگه بدخیم باشه که بیچاره دیگه تا آخر عمرت نمیتونی درمانش کنی اگه خوشخیم باشه با زحمت یفته میده یه سال دو سالم زمان میبره تا این عادت ترک بشه چرا این کارو بکنم تو فکر را مسائل دنیایی مشغول بکنم این بزرگان ما مد... خدا رحمت کنه مرام اجواموشتاوی تهرانی یه پدری داشتن ایشون بودم امیرعبدالعلی تهرانی حتمی خوبی بود امیرعبدالعلی تو این بازار تهران با یه کفاشی رفیق بود این چه جور رو مدیریت میکردن ببین تو همه زمینه‌ها دارن میگم ما نگی فقط تو بحث نامحرم و تو مسئله شهوانی میگه نه آره یه موقعی دوستان از ازو اموشتا ورستون که آقا عسکریم پینجو چون معروف بود اس کریم که امام زمان حجرهش تو بازار می پیشش میشست حالا حجره ای نبود کفاش بود تعمیراتی گفش این چیکار کرده بود که اینقدر آقا بهش نظر داشت حضرت بهش نظر داشت ایشون یه نمونه شو گفته گفتم یه نمونه بهتون میگم او فکرش رو مدیریت میگم این فکر با گناه اونس نگیره مثلا یه نمونه های مشتبه های تهرانی ایشون فرموده بود نوشتن در حوالاتش که موقعی که این بازاری ها چند تا دونه سیب خوشتم خرید خوش عطر، خوشتم، خوش رنگ سیب داریم کیلو پنج توم سیب داریم کیلو هزار فرق میکنم با هم دیگر. میگه اوور در مغزاست کریم که من دیروز سیبه رو خریدم دوست دارم، دلم نییم و تناخوری کنم سه تا دونه چهار تا دونه شم تو آوردن آسد کریم یه نگاهی به کرده بود و گفته بود من ازت متشکرم همین که یاد من بودی فراموشم نکردی ازت ممنونم اما نمیتونم این سیبا را ازت قبول کنم گفته بود چرا؟ سیب این خوبی گیرونم هست گفته بود مشکل همین کدوم مشکل همینه یعنی چه ببین ببینید من خب گوش بدید ببینید اولیا الله همه جور خودشون رو مدیریت آیون نفستون رو مدیریت بکنید ببینید هوای نفس به زندگی شما جهت نده شما به هوای نفستون جهت بدید هر جوری خواستی زندگی نکن هر جوری درسته زندگی کن آجا دوست دارم دم خب این دم یه موقعی بعدم برات مشکل میشه ها دوست دارم به خواسته برسم این خواسته ها برات مشکلی اجاد میکنه قیامتی هست قبری هست برزخی هست آسد کریم گفت تو ببینی من این سیبایی که تو برای من آوردی این خوش من منم در حالت فعلی که هستم پول خریدن اینا رو ندارم الان اگه از این سیب بخورم ببینید خداقای کلی الله چقدر فکر میکردن برای هر چیزیشون اگه از این سیب بخورم دیگه سیب معمولی به مزه نمیکنه راست میگه آقا شما یه پیتزا فروشی خوب پیدا بکنید پیتزایی اونا بخورید دیگه پیتزا فروشی سر کجاتون نمیتونه بخوری اون 15 هزار تومن این 5 هزار هر وقت مثلا یه حالا هر قضایی هر غذا فروشی فلان رستوران بری مثلا که گرون قیمت پرسی 50 طمان غذاشه، دیگه غذا پنج طمانی به دلت نمیشینه میخوری همونگاه داری زهرمار میخوری میگینم شد غذا؟ آست کریم گفت و ببینیم اگه این سیبا بخورم سیب معمولی به مزا نمی مجبور میشم برای اینکه بتونم از این سیبا بخرم اون دوزار پولی که دست مردم میگ نون حرام تو زندگی میاد به خاطر اینکه این دو تا سیب و الان فکرم مشغول میشه این فکر عادت میکنه به این وضعیت همین الان دو تا مش بیشی که من میزنم اما نون حرام تو زندگیم نمیارم همه حرفی که من امروز بتونم به شما عزیزانم زده باشم اینا رفقا فکرتون رو مراقبت بکنید مسائل مالی مسائل شهوانی مسائل هر چیزی که هست به هر آدمی اقتضای طبیعتش متفاوته هر چیزی میبینید ممکن شما رو به دنیا مشغول کنه از خدا غافل بکنه کنار بذارید و چی میخواد باشه وقت موفق میشه حتی تو مسائل دنیایی هم موفق میشید. یه کاسب خوب میشه یه کارمند خوب میشه یه دکتر و مهندس خوب میشه شرزش اینه که فاید پس لب کلامم رو بگم نگید آجا بحثتون موضوعیت نداشت ببینید گفتیم قرآن میگه اگه ذکر من یادتون بره اولین زرر رو خودتون کرد مهمتری رو هم برای اینکه خدا از ذهنمون و از زندگیمون دور نشه اینه که فکرمون رو مدیریت کنیم اما خب مراسم برای از محسومه هست چند جمله یه فضائل بیبی بی بی بی بگم حیفه قوم که میرید آیون بدونید یه جایگاهی جا گذاشتید یه جایگاهی پا و حضور پیدا کردید که بزرگان ما میگن زیارت قبر این بیبی بی اثر وضعی زیارت حضرت زهرا سلام الله علیه ها این خانم اون کسیست که علامه تبا بش بهش گفتن آسد محمد حسین افتخار عمره چیه؟ ایشون گفته بود افتخار همه عمرم این است که سی سال روزم رو با بوسه بر ذریع حضرت معصومه افتار کردم این خانم اون کسیست که آشق عباس قومی میگه میرزای قومی رو دیدم در عالم کشف گفتم میرزا به من بگو حضرت معصومه تو اون این اینقدری قدرت داره که اهل قوم رو شفاعت بکنه میرزای قومی گفته اون چه حرفی میزنی؟ اهل قوم رو که من میتونم شفاعت بکنم اینقدر این خانم اینور عظمت دارد که اگر بخواد میتونه تمام اهل محشر رو شفاعت بکنه در خونه این خانم میریم قدرش رو زیارت نامهایی که برای از سوی میخونید امام رضا بعضی از بزرگان ما میگن براش گفته خود علی ابن موسیق رزا بعد خود امام رضا میگه که اشفعی لنا فل جنه فل جنه با لل جننه متفاوت لل جننه یعنی یا حضرت معصومه شفاعت که من برم تو بهشت فلجن نه یعنی اگه رتبم تو بهشت پایینه شما شفاعت کن رتبم برود بالاتر خیلی عظمت ها داره این بیبی بی قدرش رو بدونیم از خود خانم هم کمک بخواید بگید بیبی جان تو این دوره آخر زمان دینداری سخته تو این دوره آخر زمان مؤمن و مسلمون بودن سخته واقعا سخت بگید خانم خودت مادری کن در حق نوجب اونا. ما هم هم شماها شما ها بودیم اومدیم جلسات ولی خیلی رفقایی که با هم اومدیم نمیخوام بگم من خوب شدم نه ولی اونا دیگه واقعا تو فساد دارن دست و پا میزنن التماس حضرت معصومه کنید دین دینداری سخته خودت کمک کن بیبی خدایا به حق حضرت معصومه به همه ما توفیق ذکر و یاد خودت انایت بفرما خدای فکر ما را از گناه دور بفرما خدای بحق حضرت معصومه همه ما را جز دینداران واقعی قرار بده فرج امام زمان را برسان هدیه کنید نثار حضرت معصومه صلوات بلند خد.